بسم الله الرحمن الرحیم الحمدلله رب العالمین و الله على سیدنا و محمد و آله و بعد، الحمدلله تا هنوز صفات متضاد را خواندیم حالا صفات را میخوانیم که برای زید نیستن و زید نداره این صفات که انشالله تا این جلسه خواهی خواند قلقله و سفیر و تکریر و تفشی و استطاله و انقراف و لین هستند قلقله تعدادش پنج حرفه و مجموع این قلقله با جمله قطب و جدین جمع شده یعنی قافیت تا دو به سه سه جیم چار دال هم پنج این پنج تا حرف قلقله دارن قلقله چی هست؟ القلقله تو اظهارو نبرت لسوت خال النطقه به حرف من حروفها قلقله عبارت از ظاهر شدن یک جنبش است برای صوت در هنگام ادا کردن به هر من حروفی ها یعنی از حروف قلقله و سمیت بدالک لأن اللسان يتقلقل به عند النطق نطق ان این حروف را حروف قلقل نام نخواده و سمیت نام یعنی نخواده بدالک بقلقل چون که زبان و یعنی تکان میخورد به به همه حروف قلقله کای مندن نطق ساکنتن وقت ادا کردن همه حروف منتها وقتی که ساکن باشد وقتی که این حروف ساکن باشه و بخوای ادا کنی زبان یک طور تکان می‌خوره نامگذاری کردن و نام قلقله تعدادش پنج تاست و مجموعشم هم قطب و هست صفت بعدی صفت صفیر هست الصافیر تعدادش تاست و مجموعش هم و سین و ساد هست ز و سین و ساد صفیر چیست؟ الصفير صوت زائد يخرج من الشفتين عند النتق بحروفه شبيه بصوت بعض الطيور صفیر یک صدای اضافيست که من الشفتين از بین دو شف و لب خارج میشه عند النطق بحروفه هنگام ادا کردن به حروف سفیر بعد این صوت اضافی خارج میشه شبیه صوت بعضی از پرندگان هست ها این شدت و ضعف ممکن رو اونست داشته باشه در زید ظاهرم این صوت اضافی کم پیداست در سینه کم بیشتر و در سات چیزی زیادتر ممکن است چون این چیزی باشه اما در هم سه تا حرف ز و صاد این صوت اضافی از بین دو لب خارج میشه لذا این حروف را حروف دارای صفت سفیری نوعی صفت بعدی ما تکریر هست تکریر تعداد یکی است و مجموع شمکی وقتی یکی است یعنی حرف راست تکریر چیست؟ ارتعاد و قرف لسان اون در نطقه به حرف را را دادنی. طرف زبان هست هنگام عدا کردنی به حرف را یعنی هی تکان خوردن و تکرار شدن طرف زبان هست طرف زبان نه رسول لسان و زهر لسان بلکه قرف لسان ارتقاد و تکرار طرف زبان هست هنگام ادا کردن به حرف را صفت بعدی تفشیه هست تفشیه هم یک تا حرف داره که اونم حرف شین هست تفشی چیست؟ انتشار و من الفم گسترش و پخش شدن هوای از فم و دهن وقتی شین میگیم یک هوای در داخل دهن پخش میشه و فقط شین چنین رو داره شین وقتی که میگیم هوا و باد پخش میشه الاستقاله صفت بعدی ما هم استطاله هست که این استطاله هم یک حرف داره و اونم حرف باد هست ای را یعنی طولانی استقاله یعنی یک نوع خواستگاه طولانی کردن هست این را استقاله نامیده سمیه بدالکه لیستقالت اللسان هندن ندقه به سمیه بدالک استقاله نامیده به خاطر طولانی شدن زبان هنگام نطق به همین حرف زاد و صفت بعدی ما انحراف هست علی انحراف صفت انحراف تعدادش دو تا است و مجموعش هم لام و راه هست انحراف چیست و هو مایل مخرج را و لام ال طرف اللسان انحراف عبارت از تمایل پیدا کردن و منحرف شدن مخرج را و مخرج لام هست به طرف لسان یعنی وقتی حرف لام را را ادا کنیم مخرج را به طرف لسان تمایل پیدا میکنن و آخر صفت از صفات لین صفت لین هست تعداد صفت لین دوتاست و مجموعش هم واو و یاست واو و یا از ساکنان و المفتوح ما قبله واو و یایی که ساکنن و ما قبلن واو و یا باید فتحه داشته باشن واو و یایی که خودش ساکن ما قبلش هم فتحه داره اینمی واو لین صفت لین به خودش میگیره خب این صفت لین چیست؟ مد و حرفه و الیاه از ساکنتین بقد فتحت حالت الوقف مغالین و سهولت و کلفه کلفت غلل, غلل لسان مثل خوف و بیت لین مد دادن و کشیدن دوتا حرف واو و یاست به شرط که این واو یا ساکنتای ساکن باشه و دیگه به شرط که بعد فتحه بعد از فتحه باشه حالت الوقف در حالت وقف معالینین که همراه با یک نرمی باید ادا بشه و سهولت آسانی و عدم على لسان و بر زبان سخته مثل خوف و بید این کشیدن و صلی الله علی سيدنا محمد و علیه الطاهرين.